خودخوا نوشته ریچارد فصل نهم بخش سبا. این احتمال هست که در مورد بهترین نر نظر اکثر ماده ها یکی نباشد چون همه از روی اطلاعات مشابهی قضاوت می کنند بنابراین نر خوش شانس بیشترین بهر از آمیزش نصیبش می و به خوبی از پس وظیفش برمیآید زیرا تنکاری که باید بکند این است که تعدادی از اسپرم های ناقابل خود را تقدیم کند. این احتمالا همان چیزی است که در فیل دریایی و مرغ بهشتی صورت می گیرد. فقط به تعداد اندکی از نرها اجازه می که راه برد بهر خودخواهانه ای را که در تمام نرهاست پیش ببرند. اما فقط وقتی چنین می کنند که مطمئن باشند در نعمت را فقط به روی بهترین نرها گشودند. از دیدگاه یک ماده باید دید وقتی دنبال این است که جنهای خوب برای پیوند دادن با ژن خودش پیدا کند. در واقع دنبال چیست؟ یکی این است که دلیلی بر توانایی ادامه زندگی پیدا کند. و هیست که هر نری به او نزدیک می شود. این را ثابت کرده که تا سند بالغ شدن زنده مانده است. ولی لزومن ثابت نکرده که بعد از این هم می تواند زنده بماند. یک سیاست کاملا مناسب برای ماده این است که دنبال مردهای سن و سالدار باشند هر کم و کسر دیگری داشته باشند دست کم این را نشان دادهاند که میتوانند عمر کنند و آن ماده میتواند از های خود را با های عمر دراز ترکیب کند اما اگر فرزندانش برای اون نوی زیادی نیاورند عمر طولانی آنها فایده ای ندارد عمر طولانی گواه به ظاهر موجهی برای قدرت جنسی مردانه نیست در واقع شاید علت عمر زیاد یک مردین باشد که وارد کار تولید مثل نشده باشد. مادهی که نر جا افتاده را بر می قصد ندارد. تعداد زاده هایش از رقیبی که مرد جوانی را با نشانه دیگری از جنهای خوب برگزیده از کمتر باشد. نشانه دیگر چیست؟ موارد زیادی وجود دارد. شاید ماهیچ قوی نشانه توانایی در بدست آوردن قضا باشد. شاید پای بلند، نشانه توانایی در سریع فرار کردن از دست شکارگر باشد ماده ممکن است از پیوند دادن ژن خود با چنین خصوصیاتی به سود آنها عمل کند زیرا این ویژگی مفیدند چه در دختر چه در پسر؟ بنابراین، ما در ابتدا بنا را بر این میگذاریم که ماده ها نرها را بر مبنای برچسبهای کاملا واقعی یا نشان که آکی از جن زیربنایی بنایی خوبند انتخاب می کنند. اما در اینجا نکته جالبی است که داروین با آن توجه کرد و توسط فیشر به طور روشنی اعلام شد. در جامهایی که نرها بر سر اینکه نر هیکل منتخب زنها بشوند رقابت دارند، یکی از بهترین کارهایی که یک مادر در انتخاب برای جنهاش می‌تواند انجام دهد این است که پسری بسازد که وقتی به نوجوانی رسید یک نر قوی‌هکل قابل توجه از آب درآید اگر آن ماده اطمینان پیدا کند که پسرش در آینده یکی از آن معدود مذکر می شود که در بزرگی در جامعه مورد پذیرش ماده ها برای آمیزش قرار می گیرد دارای تعداد نوه زیادی خواهد شد نتیجه که میگیریم این است که در چشم یک ماده یکی از خوشایندترین ویژگی های ممکن برای یک نر همین گیرایی از نظر جنسی است ماده که با یک نر قوی هیکل فوق العاد جذاب آمیزد، احتمالا صاحب پسرهایی خواهد شد که مرد پسند ماده های بعد واقع می شوند و تعداد زیادی نوه برای آن ماده درست می کنند. بنابراین می شود اینطور تصور کرد که در اصل ماده ها بر اساس ویژگی های آشکار کارآمدی مثل ماهیچهای های درشت نر را انتخاب می کنند. اما وقتی این بیشگی ها به طور گسترده در میان ماده آن جمعیت مقبول افتاد، انتخاب طبیعی فقط به این دلیل که مورد توجهند به آنها برتری میدهد. بنابراین شاید چیزهای اقراق شده در نر مثل دوم مرق بهشتی در نتیجه یک نوع فرایند ناپایدار پیش تکامل یافته باشد. در روزهای نخست احتمالا مادهها دمی دومی بلندتر از اندازه معمول را در نرها میپسندیدند. را شاید به عنوان نشانه یک ساختار سالم ترجیح میدادند. دم کوتاه میتواند نشانه کمبود ویتامین، نشانه عدم توانی در به دست آوردن غذای خوب باشد یا شاید نرهای دم کوتاه نمیتوانستند از مقابل شکارگرها خوب در بروند و به این دلیل دنباریده شده بودند. توجه داشته باشید، نباید فرض را بر این گذاشت که ژن دوم کوتاه که به همین صورت به ارث میرسد فقط به عنوان یک شاخص فرودست بودن ژن تلقی می شود. به هر حال به هر دلیلی که باشد فرض را بر این می که ماده های اجداد پرنده بهشتی ترجیحن چشمشان به دنبال نرهایی بود که دوم درازتر از حد معمول داشتند. در صورتی که نوعی تعامل ژنی در تنوع طول دوم وجود داشته باشد در طول زمان باعث می شود متوسط طول دوم نرها در آن جمعیت رو به افزایش گذارد. ماده ها از این قاده ساده پیروی میکردم. همه نرحه را برانداز دراز کن و سراغ آن برو که دمش از همه بلندتر است. هر ماده ای که از این قاعده تخطی میکرد مجازات میشد. حتی اگر دمها آنقدر دراز شده بودم که عملا برای صاحبانشان دست و پاگیر بودند. به این دلیل هر ماده ای که پسر دم دراز به دنیا نمیآورد، این احتمال که یکی از پسرهایش مورد توجه قرار گیرد کم بود. مثل مد در لباس خانم ها یا مدل ماشین آمریکایی روند گرایش به دنبالی درازسر شدن شدت گرفت و بیشتر شد و این روند وقتی متوقف شد که دیگر دومها به نهو عجیب و غریب دراز شده بودند و در دردسری که ایجاد میکردند آشکارا بر جاذبه جنسیشان غلبه کرده بود هضم این مفهوم راحت نیست و از زمانی که توسط داروین تحت عنوان انتخاب جنسی مطرح شد تا کنون شکاکان آن را ندیده گرفتند. این ساوی یکی از کسانی است که آن را نپذیرفت. ما نظریه روباه روباه او را قبلا دیدیم. او نظریه کاملا مخالفی به نام اصل معلولیت اصل عامل بازدارنده را در مقابل آن مطرح کرد. او خاطر نشان می کند. این واقعیت که ماده ها برای انتخاب ژن خوب در نرها در تلاشند باعث می شود نرها از در فریب وارد شوند. شاید ماهیچه قوی شاخص خوبی باشد و ماده در انتخابش روی آن حساب کند اما آن چه تزمینی وجود دارد که نرها نخواهند به دروغ ماهیچه‌های خود را قوی جلوه دهند مثلا ناطور که انسان‌ها بالشتک‌های زیر شانه لباس خود قرار میدهند. اگر تظاهر به داشتن ماهیچه درشت کم هزینهتر از داشتن ماهیچه درشت واقعی باشد انتخاب جنسی ژن را ترجیح می دهد که ماهیچه های بظاهر دروش را ایجاد می کنند. اما چیزی طول نمی کشد که یک انتخاب در جهدی دیگر باعث تکامل مادهی می شود که به این فریب پی میبرند فرض اصلی سهاوی این است که خود نمایی جنسی که دروغین باشند سرانجام در انجام دفافت کشف می شود. او بر این اساس نتیجه می گیرد که مردان واقعا موفق هایی هستند که نمایش دروغین ندارند. آنهای که آشکارا را ثابت میکنند که اهل فریب نیستند مثلا در مورد های قوی آن مردهایی که فرض را برین این میگذارند که ماهیچه را ظاهرا قوی نشان دهند دستشان خیلی زود توسط مادهها رو میشود نری که عملا با بلند کردن وزنه سنگین یا با نشان دادن قدرت خود در پرس سینه ثابت کند ماهیچه محکمی دارد میتواند در قانع کردن مادهها موفق باشد به عبارت دیگر صحاوی معتقد است یک فرد مذکر نباید فقط ظاهرا ویژگیهای مردانه داشته باشد باید در واقع یک نره با کیفیت باشد وگرنه مورد قبول مادههای خوردهگیر و دقیق قرار نخواهد گرفت بنابراین فقط نمایشهایی تکامل یابد که یک نر قوی کل واقعی از پسش برمیآید این از این حالا میرسیم به آن بخش از نظریه صحاوی که واقعا قابل حذف نیست او میگوید در دوم پرندهی بهشتی، شاخ بلند گوزن و دیگر مشخصهایی که از نظر جنسی مورد پسندند همیشه یک دوگانگی وجود دارد. زیرا از یک طرف برای دارنده خود دست و باگیر هستند و دقیقا به این دلیل که وبال گردن و عمل بازدارنده تکامل پیدا می کنند. پرنده نری که دومش بلند و مزاحم است. به مادهها ثابت می کند که نر قدیهه کلیس چون با وجود داشتن چنین دومی به زندگی ادامه داده است. ماده را در نظر بیاورید که مسابقه را تماشا می کند که در آن دو مرد در حال دویدن هستند. اگر هر دو در یک لحظه به خط پایان برسند در حالی که یکی از آنها عمدن یک کیسه پر از زغال سنگ را هم بر پشتش حمل کرده است آن زن طبیعتا به این نتیجه میرسد که آن مرد حامل بار یقینا دوندهی سریعتری است من این نظریه را قبول ندارم گرچه اکنون نسبت به وقتی که اول بار آن را شنیدم از شدت این عدم قبولی کاسته شده است آن موقع گفتم نتیجه منطقی این تکامل باید مرد یک پا و یک چشم باشد صحابی که اسرائیلیست فورا پاسخ داد بسیاری از بهترین فرماندهان ما یک چشمی هند. با وجود این مسئله این است که در نظریه اصل معلولیت یک تناقض اساسی وجود دارد. اگر آن بار اضافی یک مانع واقعی باشد و در این قضیه اصل این است که واقعی باشد، آنگاه خود آن بار اضافی درست همانطور که میتواند ماده ها را جلب کند، میتواند بچه ها را دچار آسیب کند، در هر صورت مهم این است که آن بار اضافی به دختران منتقل نشود، اگر نظریه معلولیت را به زبان ژنی بیان کنیم تقریبا اینطور می شود هر ژن که باعث رشد بیشتر آن معلولیت شود مثلا دوم را درازتر کند در خزانه ژنی زیاد می شود زیرا ماده ها نرهایی که آن معلولیت را دارند را انتخاب می کنند چون ژن که ماده را به چنین انتخابی وا می دارد نیز در خزانه ژنی رو به افزایش می گذارد. علت این است که ماده که نر دارای معلولیت را میپسندند خود به خود نرهایی را بر میگذینند که جنشان از جنبه های دیگر خوب است زیرا علیرغم آن معلولیت تا بزرگ سالی زندگی خود را ادامه دادند این جنهای خوب دیگر به بدن بچه های آنها منفعت میرسانند آنها هم زنده میمانند و ژن های همان معلولیت همچنین ژن انتخاب کننده نرهای دارنده آن معلولیت را بیشتر منتشر می کند به شرطی که آن ژن اثر خود را فقط در پسرها بروز دهد درست همانطور دور که ژن انتخاب نر با معلولیت فقط در دخترها دیده می شود این نظریه می تواند کارایی داشته باشد تا اینکه موضوع را با جنها به این صورت صورت بندی کنیم نمی توانیم باشیم که کارایی دارد یا نه. اما اگر به شکل یک مدل ریاضی باشد، می توانیم تصور بهتری از موثر بودن چنین نظریه پیدا کنیم. تا آن متخصصین ریاضی ژنتیک که تلاش کردم اصل معلولیت را به صورت یک مدل کارآمد درآورم به جایی نرسیدند. علت این است که این است به درد خورد نیست یا شاید آنها هوش کافی را نداشتند. یکی از آنها مینارد سمیت است و حس من شق نخست را بهتر میپسندد. شق نخست این بود که این مدل کارآمد نیست در مقابل اینکه ریاضیدان هوش کافی ندیدند. اگر هر نر طوری برتری خود را به ماده بنمایاند که لازم نباشد به عمد خود را دارای معلولیت نشان دهد، بیشک با این کار موفقیت جنیش رو به افزایش خواهد بود. بنابراین فیلهای دریایی برنده و صاحب حرمسرا می‌شوند. نه به این دلیل که از نظر زیباشناختی مورد توجه مادهها بودند، بلکه با این تدبیر ساده که هر نر دیگر را که به حرمسرا نزدیک شود لت می پار صاحبان حرمسراها در مبارزه با آنها که قصد, قصد به حرمسرا را دارم به پیروزی می‌رسند. فقط به این دلیل آشکار که صاحب حرمسرایند قاسبها اغلب موفق نیستند چون اگر توانایی موفق شدن داشتند تا آن موقع جایی را فتح کرده بودند. بنابراین مادهی که فقط با صاحب حرممسرا جفت گیری می ژن خود را با ژنی پیوند میدهد که به قدر کفایت نیروند است تا در برخوردهای بعدی نیز از پس تعداد زیادی از آن نرهای سرخورده بی جفت مانده براید اتمالا پسرهایش از پدر توانایی اداره کردن یک هرمسره را به ارث خواهند برد یک فیل دریایی ماده عملاً چندان اختیاری از خود ندارد زیرا اگر بخواهد دست از خطا کند صاحب حرم تنبیهش می کند در هر صورت این اصل پا بر جا که مادههایی با نرهای برنده مبارزه آمیزش می کند با این کار به نفع ژن خود عمل کردهاند. همانطور که دیدیم نمونههای زیادی از مادههایی وجود دارد که ترجیح میدهند با نرهای دارای قلم رو یا با نرهایی که در سلسله مراتب حاکمیت جامعه موقعیت بالایی دارند جوافت شوند. خلاصه اینکه انواع مختلف زادآوری تکمسری، تعداد روابط جنسی و غیره را که بین حیوانات دیده می شود می توان به صورت تضاد منافع بین دو جنس تفسیر کرد. افراد هر جنس میخواهند در طول عمر خود حاصل تولید مثل خود را کاملا افزایش دهند. به خاطر یک تفاوت اساسی در اندازه و تعداد تخمک و اسپرم، نرها عموما به سمت بی‌قید و بندی از نظر جنسی و نداشتن مراقبت‌های پدران می کنند. ماده ها یکی از دو راه موجود را در پیش می‌گیرند که من آنها را سعادت خانوادگی و نر قوی هیکل نامیدم. شرایط محیطی یک گونه تعیین می‌کند که مادهها به سوی کدام که از این دو روش کشیده می‌شوند و همچنین تعیین می‌کند که نرها چگونه با هم پاسخ می دهند در عمل انواع مراحل میانی بین راهبردهای نر کل و سعادت خانوادگی وجود دارد و اما طور که دیدیم در مواردی پدر حتی از مادر بیشتر به فکر نگهداری بچه است این کتاب به جزئیات در گونه های حیوانی خاص نمی پردازد بنابراین در مورد اینکه چه چیزی چه گونه را به سمت نوع خاصی از زاداوری سوق داده نباعث شدان روش را به نظام دیگر ترجیح دهند و احس نمی کنیم به جای آن تفاوتهایی که در کل بین ماده و نر معموله وجود دارد و تفسیر آنها می پردازیم. بنابراین من روی گونه هایی که در آن تفاوت بین نر و ماده کم است یعنی در کل گونه هایی که ماده ها راه برد سعادت خانوادگی را پیش گرفته اند، تاکید نمی کنم اول این نر که به دنبال رنگ های درخشان می روید. که از نظر جنسی گیرایی دارند و ماده بیشتر فاقد زرق و برق است افراد هر دو جنس سعی دارند از خورده شدن توسط شکارگرها بگریزند و از نظر تکامل این فشار روی آنهاست که رنگ چشم گیرتر نداشته باشند رنگهای درخشان به همان نسبت که توجه جنس مخالف را جلب می‌کنند، می‌توانند شکارگرها را نیز جلب کنند به زبان ژن یعنی در پایان ژن رنگهای درخشان بیشتر از رنگ‌های مات در شکم شکارگرها یافت می شود از آن نر احتمال اینکه در نسل بعد سرکله ژن بی رنگ پیدا شود کمتر از ژن رنگ های درخشان است زیرا افراد ناتوان در جلب توجه جفت با مشکل مواجهند. بنابراین برای انتخاب دو فشار متضاد با هم در کار‌اند شکارگرها در جهت برداشتن ژن رنگ های درخشان از خزانه ژنی هستند و شریکان جنسی در پی برداشتن ژن رنگهای ملالاورند آورند. که در بسیاری از موارد دیگر مستاق دارد هر ماشین بقای کارآمد را میتوان ترکیبی از سازش بین فشارهای متضاد برای انتخاب در نظر گرفت آنچه در اینجا برای ما جالب است اینکه سازگاری مطلوب برای نر با سازگاری مطلوب برای ماده فرق دارد البته این با دیدگاه ما که نرها را خوش اقبال در نظر میگیرد کاملا همخوانی دارد چون در مقابل هر تخمک ماده نر میلیونها اسپرم میسازد از نظر جمعیت اسپرمها خیلی از تخمکها جلوترند بنابراین احتمال اینکه هر تخمک وارد لقاح جنسی شود خیلی بیشتر از هر اسپرم است در واقع تخمک یک منبع نسبتا با ارزش است و بنابراین لازم نیست که ماده بخواهد از نظر جنسی خیلی مثل نر جذاب باشد تا از بارور شدن تخمکش مطمئن شود یک نر میتواند پدر همه ی بچه هایی باشد که از تعداد زیادی ماده زاده شده اند حتی اگر نری به خاطر دوم بلند بر توجه شکارگرها را جلب کند و عمرش تمام شود یا در میان بوتزاری گیر بیفتد باز ممکن است قبل از مردن مهر پدری خود را روی تعداد زیادی بچه زده باشد نری که ظاهرش بی جلوه و آور است شاید به اندازه یک ماده کند اما فرزندانی اندک داشته باشد و جنهای از چندان منتقل نشوند. چه فایده ای دارد اگر نری تمام دنیا را به دست آورد ولی جنهای خود را که می تا ابد زنده بمانند از دست بدهد. یک تفاوت معمول دیگر بین دو جنس این است که مادهها بر سر انتخاب شریک جنسی پروس یک دلیل مشکل پسندی برای هر دو جنس این است که احتیاط می‌کنند تا با اعضای گونه دیگری آمیزش نکنند چنین آمیزهای به دلایل مختلف چیز بدی است گاهی مثل مورد آمیزش انسان با گوسفند جفتگیری به تشکیل جنین منجر نمی‌شود بنابراین زیاد چیزی از دست نمی‌رود اما وقتی گونه‌هایی که به هم نزدیکترند، مثل اسب و الاغ هزینه آن حداقل برای طرف ماده کم نیست. احتمالاً جنین قاطر شکل گرفته و به مدت یازده ماه زهدان او را به هم می ریزد. مقداری زیادی از سرمایهگذاری او به عنوان والد نه فقط به صورت غذا از راه جفت جذب می شود بلکه کمی بعد به صورت شیر مصرف می شود. اما بالاتر از همه، اینها زمانی است که می صرف پرورش بچه های دیگر شود. بعد وقتی که قاطر به سن بلوغ می معلوم می که نازاست. شاید علت این باشد که با وجود شباهت کافی بین هورمون‌های های اسبالاق که باعث می بتوانند با هم بدن قوی یک قاطر را بسازند اما این شباهت آنقدر نیست که با هم در تقسیم میوزی سلول ها همکاری کنند. حالا دلیل اصلی هرچه باشد اگر از نظر جنها در نظر بگیریم سرمایهگذاری گذاری کلانی که ماده در پروردن یک قاطر انجام می‌دهد، دهد هدر می دهد. اسب ماده باید خیلی زیاد مواظب باشند تا فردی که با آن می آمیزند اسب باشد نه الاق. به زبان جنی هر جن اسب که بگوید بدن اگر ماده هستی با هر نر پیر آمیزش کن چه علاق باشد چه اسب جنی است که در نهایت خود را در بنبست قاطر گرفتار می کند و سرمایهگذاری مادر برای آن بچه قاطر به شدت از توانایی او برای پرونده اسب بارور میخواهد از آن طرف، نر اگر با عضوی از گونه غیر خودی جفت شود چیز کمتری برای از دست دادن دارد گرچه از اون بابت به چیزی هم نمی رسد بنابراین ما انتظار داریم نرها در انتخاب شریک جنسی خود وسواس کمتری داشته باشند حتی درون یک گونه ممکن است دلایلی برای سخت گیری وجود داشته باشد در آمیزش با مهارم مثل آمیزش و عضوهای دو گونه مختلف احتمال نتایج ژنی آسیب دیده وجود دارد زیرا در آن ژنهایی کشنده و نیمه کشنده مغلوب خود را نشان می دهند. باز هم ماده ها بیشتر از نرها بازندند چون سرمایهی که روی هر بچه می بیشتر است در جایی که آمیزش با مهار من می شود انتظار ما این است که ماده ها در گرویدن با آن منع بیشتر از نرها مسر باشند اگر فرض این باشد که در رابطه آمیزشی دو محرم احتمالا شریک مسنتر فعالتر و شروع کننده عمل است، باید انتظار داشته باشیم پیوندی که در آن نر مسنتر از ماده است، معمولتر باشد تا پیوندی که در آن ماده مسنتر از نر است. مثلا رابطه نامشروع پدر دختر احتمالا باید بیشتر دهد تا رابطه مادر پسر، و رابطهٔ خواهربرادر از نظر رواج باید چیزی بینابین اینها باشد در کل نرها باید بیشتر از ماده ها تمایل به بیبند و باری داشته باشند از آنجا که ماده تعداد محدودی تخمک را با سرعت نسبتاً کمی تولید می کند از آمیزش با نرهای چیز زیادی نمیرسد از آن طرف نر که میتواند هر روز میلیونها اسپرم تولید کند از هر جفتگیری آزادانه که گیرش بیفتد میتواند بهره ببرد آمیزش اضافی عملا برای ماده چندان هزینه‌ای ندارد جز اینکه کمی وقت و انرژی از او می گیرد اما حاصل به درد بخوری برایش ندارد اما نر هرگز به تعداد آمیزش کافی با ماده‌های مختلف ممکن نمیرسد. برای نر واژه‌ی اضافی معنا ندارد من به صورت آشکار از آدم ها صحبت نکردم اما وقتی صحبت از بحث های مرتبط با تکامل باشد مثل این فصل خواناغا نمیتوانیم از اندیشیدن درباره گونه و تجربیات خودمان اجتناب کنیم این موضوع که ماده ها از آمیزش خودداری می کنند تا وقتی که نر نشانه های دال بر وفاداری در دراز مدت را نشان دهد ممکن است برایمان آشنا و دلنشین باشد ممکن است این را برساند که انسان های ماده بیشتر از راهبرد سعادت خانوادگی استفاده می کنند تا از راهبرد نر غریحه کل در واقع بیشتر جوامع انسانی تک در جامعه ما سرمایه‌گذاری هر دو والد زیاد است و عدم برابری آشکاری ندارد. مادرها به یقین به طور مستقیم کار برای بچه انجام می دهند اما پدرها اغلب غیر مستقیم سختتر کار می کنند تا امکانات مادی لازم را به پای بچه ها بریزند. از طرف دیگر، بعضی جوامع انسانی بیقید و بندند و در بسیاری حرم سرا رایج است. این گوناگونی حیرت آور حاکی از آن است که شیوه زندگی انسان دا تا حد زیادی فرهنگ تعیین می کند. نه جنها. اما باز ممکن است همانطور که در زمینه تکاملی پیش بینی می شود، در کل انسان نر به بی و بندی و مادهها به تک همسری متمایل باشند. اینکه در جامعه خاصی کدام یکی از این دو گرایش دست بالا را داشته باشد به جزیات شرایط فرهنگی بستگی دارد. یک ویژگی جامعه خود ما که کاملا قیرادی به نظر می رسد، موضوع خودنمایی جنسی است. همونطور که دیدیم، در زمینه تکاملی کاملا می شود انتظار داشت. در جایی که دو جنس متفاوت وجود دارد، این نر است که خود را به نمایش می گذارد و ماده بیخیال است. مرد غربی امروز بیشک از این نظر استثنا است. البته درست است که بعضی مردان لباس های پر زرق و برق می پوشند و بعضی زنها ساده و بی هند. اما روی هم رفته در جامعه ما چیزی که معادل چتر تابوس هست توسط ماده به نمایش گگذارده می شود، نه توسط نر. زنها صورتهایشان را رنگ می کنند و موژه مصنوعی می چسبانند. مردان غیر از مورد خاص مثلا هنرپیشهها چنین کارایی نمی کنند. به نظر می رسد، زنان بیشتر به ظاهرشان توجه می کنند و مجله ها و جورنال ها هم آنها را بیشتر تشویق می کنند. در مجله های مردان کمتر چیزی در مورد گیرا بودن مردان دیده می شود و مردی که به طور غیر متعارف به ظاهر و لباس خود توجه کند در میان اطرافیان خود چه زن چه مرد تردید بر می وقتی در گفتگو صحبت از یک زن باشد به احتمال زیاد آشکار درباره بود یا نبود جاذبه جنسی او صحبت می شود فرق نمی کند سخنگو مرد باشد یا زن ولی وقتی درباره یک مرد حرف می زنند، به احتمال زیاد صفاتی که به کار می رود ربطی به امور جنسی ندارد در مقابل این واقعیت ها یک زیستشناس شناس خواه احساس می کند که در برابر جامع ای قرار دارد که در آن ماده ها بر سر نرها رقابت می کنند. به جای اینکه برعکس باشد در مورد مرغان بهشتی گفتیم که ماده ها ساده و بیزرق و برغند زیرا لزومی ندارد بر سر نرها با هم رقابت کنند. نرها درخشان و آن چون ماده پرخریدارند و در جایگاهی که می توانند انتخاب کنند. دلیل اینکه مرغ بهشتی ماده خواهان دارد این است که تخم نسبت به اسپرم منبع کمیابتری است چه بر سر مرد غربی امروز آمده آیا واقعا نرد جنسی شده که دنبالش باشند آن است که خواهان دارد در جایی است که میتواند انتخاب کند اگر چنین است به چه دلیل